من حقیقتش می‌خوام در مورد یک گونه در حال انقراض صحبت بکنم از همین صاحب‌گونای خودمون، اونم آرشیتکتان. مرکز نوبریای شهری تهران در جواب به یک موزل شکل گرفته، بعدی و اونم بحران دیسپلین معماری. اول دیسپلین معماری رو تعریف کنیم. دیسپلین معماری، همج... هر دیسپلینی، یک نظام همه جانبه برای تولید، به روزرسانی ازانه خودسازی، انتقال و اعمال یک حوزه دانشیه. و من به عنوان یک آرکیتکت با خیلی از های دیگه ایرانی موافقم که ما دیسیپلن معماریمون دوچار مزدل و آرشیتکت‌ها دوچار مزدل هستن. بعدی خب حالا این مزدل رو میشه در چهار حوزه از رو تعریف دیسیپلین به اصطلاح شناسایی کرد. در حوزه آموزش یا پداگوژی من با ادویکیشن فرق میکنه به خاطر اینکه اولا ترجمه آموزش نیست منظور تربیت معماره. تو حوزه حرفه یا همون حوزه که من بهش گفتم اعمال پرکتیس تو حوزه گفتمان یا دیسکورس که به اصطلاح انتقال دانشه و تو حوزه تحقیق که برای بروز, رسان بروز رسانی و ازان خودسازی به استدای این حوزه دانشی میتونه اتفاق بیفته بعدی حال ما ببینیم که این بحرانی که من دارم در مورد حرف میزنم که آکت حالا از یه خوردن یه نصفقطتر از من من چه سالمه تا دوسه نصفبته هست من یعنی بچههایی که ۲۴۵ سالگی دارم مورد بازار کار میشن با چه مزداتی دست به گریبانن اولیش افزایش تعداد دانش آموختگانه ابته من فکر می کنمم این مزل که همه دارن ولی در مورد معماری بیشتر گریبانی ما رو گرفت اسلاید بعدی اسلاید بعدی. آهان هذا شد این تعداد دانش آموختگان معماری و شهرسازی اون افسوس جمعیت 19 تا 29ه کاملا مشخصه که یک به عدم تقارن و تباینی نسبت به این افزایش ها وجود داره ما الان به اندازه اتحادیه اروپا دانش آموز معماری داریم تو ایران که خب این بازار کارو خیلی سخت میکنه. من ورودی 73 دانشگاه ملی هستم اون وقتی که من از دانشگاه ملی میخواستم بیام بیرون باید با حدود 65 6 نفر رقابت میکردم تو سال خودم 20 دا دانشگاه تهران میگرفت، 35 سی تا سی دا دانشگاه م... ملی می‌گرفت دانشگاه علم و صنعت هم فکر می‌کنم 20 نفر می‌گرفت تکلیف علم و صنعتی ها مشخص بود تکنسین‌ها می‌اومدن بیرون به بنوبراین دیزاینر دو تا دانشگاه می‌داد بیرون و خب آدم یه مقدار خیالش راحت‌تر بود الان این مقدار شرایط فرق کرده اینا چجوری بعد در خوشون کار پیدا کنند. بعدی خب دو تا اتفاق می‌افته یکی اینکه با این افسایش دانش آموخته بچه ها به اصطلاح پوش میشن، مجبور میشن به اون چیزی که من بهش میگم تحصیلات اجباری. از لیسانس میان بیرون کار ندارن، میرن فوق لیسانس میخونن، کار ندارن میرن دکترها میخونن. یه اتفاق دیگه هم میفته. این مؤسساتی که این پی دی ها رو میدن عملا تبدیل به, به اصطلاح مراکز کاریابی و تولید کار هم باید بشن برای دانش ها خودشون. بنابراین یه قانونی، رد میشه که اتولی طراحی فوق لیسانس و باید بچه های را درس بدن واسه چی برای اینکه بچه های که اومدم بیرون در این تحصیلات تکمیلی کار داشته باشن این یعنی چی؟ این یعنی کوول هاست که از نظر منو خیلی های دیگه به هم ترین هستش تو ایران دانشگاه آزاد وقت اتوللی یک فوق لیسانس درس بده بهخاطر دکترا مماری نظره. یه اتفاق دیگر میفته بعدی. که با این همه دانشجو ما دیگه کارای عمرانی چندانی هم انجام نمیدیم به خاطر اینکه خیلی از شهرامون به استاندارد استانداردهای مدرنیزم توسعه رو رد کردن بخش خصوصی هم که دست بخش خصوصی هم که دست بخش خصوصی آرشتکت ها به عنوان تولید کننده ارزش افسوده محصوب نمیکنن بیشتر به عنوان حزینه های اضافه محسوب میکنن بنابراین ما یه تعداد زیادی داریم. و یه بازار تققاضای بسیار کم حاضرم نیستیم شهر خدمات تخصصیممون رو گسترش بدیم برای که حوزه های دیگر رو بپیچونه بپوشونه در حالی که این پتانسیل توی پارادایم‌های های شهریت ماثر وجود داره که ما حداقل بتونیم به اصطلاح حوزه خدمات تخصصیمون رو از حوزه روتین دوران مدرن به دوران معاصر بروز کنیم بعدی خب چرا یه چنین اتفاقی افتاده به خاطر اینکه، با هم فراگیر شدن فرهنگ دیجیتال یه لایه دیجیتال از فوت پرنت های ما از جای پای های زندگی معاصر ما داره شهرهای ما رو میپوشونه هر بار که شما تلفن همراهتون استفاده میکنین اس ام اس تلگرام می یا یه چیزی رو توی گوگل سرچ میکنید یه نفر یه جایی برای اینکه یه سرویسی رو به شما بده از زمان مکان و ماهیت این اکتیو شما این فعالیت شما یه رکوردی تعیین میکنه و این رکورد رو نگه می‌داره مجموعه این رکوردای لایه دیجیتال رو شهر انداختن که الان به با عنوان بای پروداکت خدمتهایی هستش که به ما تو شهر مدرن داده میشه ولی وقتی که ما واقعا عبور کنیم به دنیای دنیای معاصر این لایه دیجیتال یه بخشی از فیزیک شهری که باید طراحی بشه، باید براش ارزش افسوده ایجاد بشه و اون چیزی که من تو مرکز نوآوری شهری میخوام به شهر خدمات تخصصی معمار و شهرسازا اضافه کنم. خب این لایه دیجیتال یا این تاثیر فرهنگ دیجیتال یه چیز جدیدی نیست تو سال 2002 ام یعنی از سال 2002 وارد گفتمان معماری شده دو تا پروژه هست چهکش از سمت چپی مال دیلرسکو ویدیو سمت راستی مال ژان نوول جفتشون مال اکسپو 2002 سمت چپی اسمش است اسم بلور سمت راستی اسمش است اسم مونولیت چپی در مورد به اصطلاح فیلدی از تعاملات در حالی که سمت راستی یک آبژکته. این یکی یک مجموعه ابرمانند بدون شکله در حالی که اون کیوب یه حجم پلاتونیکه. سمت چپی در مورد به تأثیرات چند لایه ادراکی سمت راستی یک عملکرد سمبولیک داره سمت چپی اتمسفر یه سمت راستی یک اتاق سمت چپی در عملا توش طراح داره زمان رو طراحی میکنه در که تو سمت راستی موضوع جهتگیری و ساماندهی به مکانه این اون دوگانه ایه که فرهنگ دیجیتال تو معماری به وجود آورده و بعد سوالی که پیش میاد اینه که آرشیتکت‌ها چگونه میتونن این دوتا تا اکستریم رو به همدیگه نزدیک کنن فضایی داشته باشن که به خواست‌های فیزیکی ما جواب میده در عین اینکه لایه دیجیتال ادراکی اپریشنال هم روش افتاده بعدی لطفاً بعدی خب اگر که توی یه ساختمون بشه چنین تفاوتهایی و اینقدر سوده به واسطه برخوردای معمارانه نشون داد و باررس کرد تو شهر باید چیکار بکنیم شهری که این لایه دیجیتال روش میفته عملا یه مکانیزم سایبرنتیکه، یعنی مکانیزمیه که تعاملات و فعالیتهایی که توش اتفاق افتاده رو میشه حس کرد، توسط شبکه ای از حسگرها میشه بر مبنای اون یه سری گل‌های برای شهر گذاشت و بعد برای رسیدن به گل‌ها میشه توسط یه سری عملگرهای اکچویترها شهر رو به اصطلاح اکچویت کرد، فعالش کرد در راستای گلهایی که ما در نظر گرفتیم. یعنی اینکه شهر تبدیل میشه به یه مکانیزم. یه سری اینپوت داره یه سری قوانین عمل کرده عمل کردی داره و در نهایت بر مبنای اون یه سری آتپوت به شهروندها میده بعدی خب این اون لایه که من احساس میکنم باید به شهر خدمات معماری اضافه بشه لایه اپریشنال شهر که داره ساپورت میشه از طریق به اصطلاح این سگانه حس کردن و کاندیشن کردن و عمل کردن. یه مسئله دیگه بحران شهرسازی داره من نگفتم برین بعدی برین قبلی لطفاً. قبلی مرسی. اینا داره میره بعدی. مرسی. یه مشکل دیگه هم آرتشکتو دارن اونم مدل اقتصادی ناکارآمدی که ما که ماها داریم من در مورد شغلای دیگه نمیدونم ولی ماها میشیم تو دفترمون منتظر میشیم یه نفر با یه پروژه بیا در بزنه الان الانم اکثر کسایی که میان به ما پروژه بدن دقیقاً میدونن چی میخوان توی ساختم توی یه زمین 200 متری 60 درصد به علاوه 2 متر ماکسیممش هم میخوان که ساخته بشه بنابراین اپلامن پروژه رو کشیدن ما فقط نقشه‌کشیشو می کنیم طبیعیه که به ما پول کافی نمیدن به خاطر اینکه نقشه‌کش اونقدی نباید پول بگیره در حالی که ما به جای اینکه پروژه تعریف شده رو بکشیم بعد پروژه تعریف کنیم و پرو محصولات فضا رو به بازار عرضه کنیم در جواب به این سگانه، مرکز نوآوری شهری شکل گرفته، حالا بعدی. که من توی به اصطلاح مدیریتی، وقتی در مورد قضیه صحبت میکنیم، چهار تا محور رو در نظر داریم، یکی تولید دانشه بروزه، یکی تربیت حرفمندان پژوهش مهوره شما اگه بخواهی تراحیه کسه دیگه یا فقط نقشه کشیشو نکنید باید دانشتون بروز باشه و تا بتونیم پروژه های جدید تعریف بکنید یکی دیگه حمایت از ایده های نوین و تدقیق اونها به پیش محصول های قابل ارائه به بازاره و نهایتا شتاب دادن به تکن، تکنولوژی های که خارج از دیسپلین تولید میشه و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. بعدی. در این راستا دوازده تا دو پروگرم تعریف کردیم. تی نوشت تزای بچه‌ای که از خارج میان تبلشون بهشون با یه رزیدنسی میدیم همکاری میکنیم باشون همراهشون هستیم تا تبلیل به دانش ازان خودسازی شده برای ایران بشه تی گفت باز بچه‌ای که خارج از اینان درس خوندن برمیگردن ازشون خواهش میکنیم که نتیجه تحقیقات فوق لیسانس و از فوق لیسانس دکترا یا پستاکشون رو با ما در میون بذارن این دو تا پروگرام رو برای این تعریف کردیم که اگر کسایی هستن که میخوان برن برای ادامه تحصیل بدونن اون طرف با چی طرف خواهند بود اگه کسایی هستند که نمیخوان برند به این طریق، بفهمند از کجا باید شروع بکنند که از همین ایران بتونن دانششونو به روز بکنن. تیلب مال وقتی که بچه ها یه ایده کوچیک دارند مونها نمیدونن این ایدار چگونه تبلی به پروژه یه پروژه و در نهایت پیش محصول فامند قابل بازاریابی بکنند میان تیم تشکیل میدن و تو تلب فعال میشن. چالش های تویک وقتی که میخوان مسابقات ملی و بین المللی شرکت بکنن پوزیشن های تویک ما یکی از پایگاه های بنیاد نخبگان هستیم بنابراین میتونیم با متخصصین غیر موقت کار بکنیم عملا فسیلیتیت میکنیم بازگشتشون رو به ایران از طریق پوزیشنایی که بهشون میدیم تی تز مدل وقتی که بچهای که تو ایران درس میخونن میخوان تزشون تزشون به جای اینکه فقط حالا اونجوری که به اندازه دانشجوها مصطلح زینت القفص این بشه تبدیل به یک کتاب و ویوای محصولی بشه که امکان تجاری سازی داشته باشه بنابراین با ما تفاهم میکنن تزشون رو تو مرکز ما میبندن تی اس استودیو کلاسهای طراحی رایگانیه که میذاریم ما کلاسامون البته یه مدل اقتصادی عجیب داره برای اینکه متوجه شدیم که اگه پول از بچه‌ها بگیره نگیریم دلشون نمی‌سوزه، نمیان بنابراین اولش چارج می‌کنیم، جلسه 50 تومن کم می‌کنیم اگه نیان نهایتاً هرکی کی 12 جلسه رو بیاد کل پولو بهش برمیگردونیم چهار تا دونه اقامت تعریف کردیم معمار موقیم هنرمند موقیم تکنولوژیست موقیم موقیم و شهرساز موقیم که اینا بچهای هستن که ارلی کریر یا میت کریر هستن یعنی یه قابل پرزنت دارن با یه پروژه وارد میشن اگر که ما از های انجام به اصطلاح این پروژه تجربی رو قرار بدیم، به یه نحوی باشون همکاری میکنیم، اگر خودشون فقط برای گرفتن آموزش دارن، همراه, می باز همراه ما میشن باز یک چارچوب دیگه ای رو براشون داریم. و نهایتاً تی ترندمونم. عكس العمل های لحظه ای گروه به اتفاقاتی که داره میفته مثلا وقتی که ساختمون پلاسکو چرا مشکل میشه یه اشاره 24 ساعته داریم نتیجه ایده یک اپلیکیشنیه که در زمان های بحران به شهروندای تهرانی کمک بکنه برای اینکه آسیب دیده ها رو پیدا بکنن توی این چهارچوب بعدی ام یک چارچوب اگه اون چارچوب عمل کردیم اون باشه این چارچوب پنج‌وجوهی خیلی مانو میدیم روی طراحی پجوهی یا دیزاین تینکینگ بعدی این فریم ورکیه که آیدیوی یکی از شرکت‌های دیزاین موفق در دنیا روش کار کرده اینا کسایی هستن که از پرینتر طراحی می‌کنن تا نحوه نشوندن بهینه مسافرات توی بوئینگ بنابراین از ابزار طراحی برای بهینه‌سازی فضا استفاده می‌کنن. یه فریم‌ورکی دارند که توی این فریم‌ورک همیشه همه چیز با یک سوال شروع میشه و بعد راه حل‌های متنوعی که برای اون سوال میشه پیدا کرد و در نهایت بهینه‌ترین اپتیموم تا این راه حل رو گرفتن و اونو به محصول نزدیک کردند. خب ما همین نظام رو از آن خودسازی کردیم. بچه‌ها وقتی که با ایده وارد میشن اول طبیعتاً یه دارند. نمونه های موردی موفقی رو که به جاهای دیگه دنیا یا در زمان‌های دیگه به اون موزه رسیده که کرده رو بررسی می‌کنند بر مبنای اون نمونه‌های موردی چشمن مجموعه اهداف و یه استراتژی‌ها و روش‌های رسیدن به اون اهداف رو در نظر می‌گیرن بعد بعد بستری رو که توش می‌خوان کار بکنن شهر تهران استان گیلان شهر شیراز. اون بستر رو شناسایی کنن تو سه حوزه. پتانسیل ها، تهدید ها با ایهه جیمی و تهدید ها با اون یکیه به خاطر اینکه هر ایدهی رو که از اجای دیگه دنیا آدم میبینه، نمیتونه بیاره توی بستر از بلاز فرهنگ و اجتماعی با اون بستر فرق میکنه بذاره. این, این میشه که بسترها بعد از این ایده هایی که تلپورت شده از یه جایی بعد از این مدتی فیل میکنه. واسه های ما بعد بستر خودمون رو بشناسیم. بعد از شش مرحله اول یه پیشنهاد طراحی میاد که این پیشنهاد طراحی ترکیبی از یه سری اجزا یه سری آملان و یه سری اکتورز این اکتانس آمل آملان کسایی هستن که بستر یه پروژه رو محیام میکنن. مثلا اگه شما یه سندلی دارید که به پایش بهداش تو شهر کمک میکنه وزارت درمان میشه یکی از آملانش. اکتور ها کسایی هستن که باید با این صندلی تعامل بکنن و نهایتاً سناریوهای تعاملی که ما بین اجزای فیزیکی و مجازی داریم وبسایت صندلی هوشمند و عاملان به عملگر عملگرها این سناریو ها تو طراحی چیده میشه یه پیش محصولی بعد در نظر گرفته بشه که حداقل اجزا و عاملانیه که میتونه مفهوم اون پروژه رو به مخاطب برسونه نسخه آزمایشی شهری برای اون پیش محصول در نظر گرفته میشه به خاطر اینکه ما محصولاتی که میسازی محصولاتی هستند که در شهر عمل میکنن. به منبرید آزمایشگاه میشه خود شهر یه نسخه از شهری بعد برای پروژه طراحی بشه، مدل انتقال تکنولوژی، مدل اقتصادی و نهایتا مدل درآمدزاییه طرح. بعدی خب من دیگه یه حدود دو دقیقه وقت دارم توی این دو دقیقه میخوام چند تا از پروژه‌ای که در اومده از اچه این نظامی هم بهتون نشون بدم این بهپای یه سندلیه که یه سری سنسورهای غیر اینوسیو داره برای اینکه به اصطلاح موضوعات مرتبط با سلامت شما رو پایش میکنه با یه اپلیکیشن توی موبایل هوشمند شما هم صحبت میکنه بنظرم این روش میشه کمپین های سلامت ایجاد کرد مثلا اینکه شهر تهران میخواد یه میلیون کیلو کم بکنه اگه صد نفر عضو این مجموعه بشن بدون اینکه نام و مشخصاتشون مطرح بشه به ازای هر یک کیلویی که کم میکنن و به این سندلی ریپورت میدن با نشستن روش عملا دارن همکاری میکنن با این کمپین کاهش وزن. بعدی یه اپلیکیشنیه برای مردم سپاری پلاکدار کردن تمام درخت های تهران شما به عنوان داوطلب یه مجموعه کیو آر سفارش میدین کیو آر کود میاد در خونتون وقتی که درخت قابل مستند کردن و پلاکدار کردن میبینین کیو آر کود رو نصب میکنین رو درخت سنپ و درخت شما درخت مستند شده توسط شما رو نقشه کلی ظاهر میشه بعدی یکی از مشکلات شهر ایران الان موج تجاریسازی های وحشتناکی که داره اتفاق میفته با عنوان مال اینو کشورهای تو قرب دههی هفتاد تجربهش کردن و متوجه شدن که چقدر شهریت هاشون داره از بین میره نتیجه اکستریمشو توی شهری مثل دوبهی میبینیم که شهریه بدون شهریت شما تو قیاباناش نمیتونیم پندق را برید و احساس نکنین نکنید. خب در کنار این یه فشاری وجود داره برای من وقتم تموم شده و این یدنا پروژه رو با اجزتون تموم میکنم. یه فشار اقتصادی وجود داره برای این مالسازی ها. خب حالا ما چگونه می توانیم این فشار اقتصادی که وجود داره با دانشی که از تجربه غرب داریم با همدیگه بیامیزیم و یک شرایط بهینه برای مملکت خودمون نجات کنیم. ما میتونیم مالها رو داشته باشیم ولی در کنارش شبکه ای از به اصطلاح تجاری‌های خردمقیاس تو شهر رو هم داشته باشیم این تجاریا چند تا تجاری خردمقیاس چند تا نکته دارن یکی اینکه روابط سینه به سینه دارن با افرادی که کنارشون میام میرن ازشون خرید میکنن چند تا از شماها با بقالی سر کوچهتون چوب خط دارین لزومی این چوب خط داشتن ارتباط به نیاز اقتصادی شما نداره بعضی وقتا از ماشین تو جایی بد پارک کردید اشیل برمی داره به حسابت. به علاوه این به اصطلاح بقالی های خورد مقیاس دارن به یه سری خانواده نون میدن. در حالی که شما وقتی میریم پالادیوم خرید میکنین، دقیقاً نمیدونین به کی دارید خیر میرسونید. خب، پالادیوم باید باشه به خاطر شهر ما داره مدرن میشه و فشار اقتصادی با املاک و مستقلات چیزی به غیر از این را نمیتلبه. منطقا در کنارش این اپلیکیشن که ما بهش میگیم مال زودعی. ام، کمک میکنه که شبکه بقالی های موجود در شهر هم تبدیل به یک مال افقی بشن یه دیژیکالایی رو در نظر بگیرین که انبارش صد متر از در خونه شما اونورتره فقط روی محصولات ایرانی شما روز نیازهای روزمره‌تون رو سفارش میدین روی این اپلیکیشن مثل اسنپ لوکیت میکنه به اولین بقاری نزدیک سورس به نوبری تو نیم ساعت براتون میاد احساس میکنیم که آینده خواهد به لحاظ تجاری میتونه به اسطلاح سوروایف کنه تو این لندسکیپی که الان توش وجود داره از اون طرف احساس میکنیم که میتونه یه آلترناتیوی باشه در کنار مال ها برای اون شهریتی که من میشناختمش پدرم میشناختدش و اگه ما کاری براش بکنیم بچه های من نمیشناسنش آقای آلی